بنامه خدای نام مهربان خدای یگانی مهربان سلام افسان ها خواب های رنگی ابتدایی و تا مردم امروزییان چرا که بهقص و شنوندگان و خوانندگان افسانه امکان این رو میدن که بر توسن سپید خیال از عالم امکان گامی فراتر بذارن منچره که دست نیافتنی و دوره ببینن، بیابند و لمس کنند این هفته می‌خايم بریم به کشور لهستان و افسانهای رو از گنجینه ادبیات مردمان این کشور براتون نقل کنم به نام افسانه بوگدینک برگرفته از کتاب های مردم لهستان با گردآوری السی بایرد و ترجمه از فاطمه شاه حسینی. روزی روزگاری در سرزمین لهستان پیرمرد و کشاورزی با همسرش در روستایی دور افتاده زندگی میکردند اونا اگرچه سالهای پیش ازدواج کرده بودند اما هنوز صاحب فرزندی نشده بودند و همیشه در حسرت داشتن فرزند بودند تا اینکه بالاخره لطف خداوند شامل حال این پیرمرد و پیرزن شد و اونا صاحب پسری زیبا شدند اونا اونقدر فقیر بودند که برای مراسم تعمید پسرشون چیزی در گنجی خونشون نداشتند پیرزن با ناراحتی به همسرش گفت ای مرد برای پدر و مادر تعمیدی باید چیکار کنیم اگه برای مراسم تعمید پسرمون مهمونی ندیم هیچ وقت کسی حاضر نمیشه پدر و مادر تعمیدی اون بشه پیرمرد به فکر فرو رفت و بعد گفت: « من میرم تا یه پدر و مادر تعمیدی برای پسر اون پیدا کنم. بعد از جا بلند شد اساش رو برداشت و کلاهش رو بر سر گذاشت و به راه افتاد پیرمرد هنوز مسافتی راه نرفته بود که به دو تا پیرمرد برخورد کرد. اونا در همسایگی هم زندگی میکردن. پیره مرد پرسیدن، همسایه کجا میری؟ پیرمرد جواب داد، میرم برای پسرم پدر و مادر تعمیلی پیدا کنم. دو پیرمرد همسایه که از فقر و نداری اون خبر داشتن، به پیرمرد مرد کشاورز گفتن، ما قبول میکنیم که پدر تعمیلی پسرت باشیم. اچی باشه مسالهاست که با هم همسایه ایم و باید به همدیگه کمک کنیم. پیر مرد با خوشحالی گفت واقعا شما پدر تعمیدی پسرم میشین؟ ای ای این ای خیلی خوبه، متشکرم دو پیر مرد گفتن بهتر زودتر به خودت برگردی و همسر و پسرت رو به کلیسا بیاری ما اونجا منتظرتونیم پیرمرد مرد کشاورز با خوشحالی به خونش برگشت. و همسر و پسرش رو به کلیسا برد نوزاد رو عصر تعمید دادن و اسم اون رو بگدینک گذاشتن بعد از مراسم غسل تأمید پدرخوندهها یعنی همون دو پیرمرد همسایه از پیر کشاورز و همسرش خداحافظی کردند اما قبل از رفتن یکی از اونا گفت هدیه منو توی گنج خونتون پیدا میکنیم و دومی هم به اونها کلیدی داد و گفت این کلید استبله که بیرون خونتون اونو میبینی این کلید رو در جای مطمئنی بذارین تا پسرتون بزرگ بشه اون وقت در اون استبلو باز کنین هدیه من اونجاست پیرمرد کشاورز و همسرش از دو پیرمرد همسایه تشکر کردن و دو پیرمرد از اونها خداحافظی کردن و به راه خودشون رفتن وقتی کشاورز و همسرش به خونه رسیدن اولین کاری که انجام دادن این بود که به سراغ گنجشون رفتن. با کمال تعجب دیدن که اون تو اونقدر غذا و قلات بود که تا آخر برشون کافی بود. خلاصه از اون روز به بعد زندگی اونها رنگ دیگه ای به خودش گرفته و پسرشون هم با خوردن اون غذاها روز به روز قوی‌تر و زیباتر شد تا اینکه به مرد جوانی زیبا و قوی تبدیل شد وقتی پسر به 20 سالگی رسید به پدر و مادر پیرش گفت آه پدر و مادر عزیزم دیگه وقت اون رسیده برم و زندگی رو تجربه کنم دعای خیرتون رو بدرقهٔ راه من کنین و اجازه بدین برم دنیا رو ببینم پیر مرد و پیر زن بیچاره هرچه اصرار کردند که تنها پسرشون یعنی بگدینک پیششون بمونه و اونا رو تنها نذاره فایده نداشت که نداشت و پسر بعد از خداحافظی از پدر و مادر پیرش براه افتاد هنوز خیلی از خونه دور نشده بود که پدرش به یاد کلید استبل افتاد و با شتاب به دنبال پسرش براه افتاد و فریاد زد پسرم بودی نک باییسا سب کن پسر با شنیدن صدای پدر ایستاد پدرش در که نفس نفس میزد به اون نزدیک شد و گفت <تصفح> پسرم ما فراموش کردیم در و باز کنیم و ببینیم پدر خوندت برای تو چه هدیه اونجا گذاشته باید باید برگردیم پدر و پسر به خونه برگشتند تا در صبر رو باز کنند و ببینن چه ای اونجا در انتظار بوپدینگه بوگدینک و پدرش به خونه برگشتند و در استبلو باز کردن اسب زیبا و بینزیری توی استبلو بود بوگدینک با دیدن اسب با خوشحالی و هیجان فریاد زد وای خدای من چه اسب زیبایی چه یالای بلندی داره آه تا به حال اسبی به این زیبایی ندیده بودم بعد هم از پدرش مجددن خداحافظی کرد و روی اسبش برید و به تاخت از اونجا دور شد. بگدینک بعد از اینکه از سومین جنگل و سومین رودخونه عبور کرد به چمنزار سبز و خورمی رسید که اونجا جادهی برای رفت آمد نبود. اون از میون سبزار رد میشد شد که گلهای سوسن سفید زیبایی رو دید. بگدینک با دیدن گلهای زیبایی سوسن به اسپش گفت میبینی چقدر قشنگن؟ شو خمشو شو اونا رو بچینم اسبش به حرف اومد و گفت بهتر اونا رو نچینی چون بکشانسی میاره اما بگدینک جواب داد این حرفا چیه؟ حیف نیست این یه زیبا رو نچینم؟ تازه، این گلا چه صدمهی میتونم به من بزنن ها؟ زود باش، زود باش، خم رو میخوام اونا رو بچینم و آه، از زیبایشون لذت ببرم اسب گفت باشه، هر کاری داری انجام بده و بعد خم شد تا بگدینک گلهای زیبای سوسن رو بچینه بگدینک گلها رو چید و اونا رو لای دستمالش پیچید و به راهش ادامه داد کمی بعد در اون طرف چمنزار در انتهای جادهی طولانی و فراخ به شهری رسید. بگدینک به محض ورود به شهر یه راست به قصر پادشاه رفت و تقاضا کرد به سپاهیان پادشاه بپیونده. پادشاه که از ظاهر بگدینک خوشش اومده بود پذیرفت که بگدینک عنوان یکی از سپاهیان قصر خدمت کنه و اتاقی رو هم براش در نظر گرفت. بگدینک از این بابت خیلی خوشحال بود و احساس آرامش و رضایت داشت دینک هر شب که به اتاقش می رفت گلهای سوسن رو از داخل دستمالش بیرون می آورد و نزدیک پنجره می زشته. وقتی اون گلها رو بیرون می آورد نور درخشانی همه اتاق رو روشن می گد یک شب نگهبانان قصر که در اون اطراف مشغول گشت و نگهبانی بودن متوجه این نور درخشان شدن و این رو به پادشاه خبر دادن پادشاه از شنیدن این خبر عصبانی شد و برافصل از پله های بالا رفت و بگدینک و صدا زد و گفت آهای تو میخوای قصر رو به آتیش بکشی ها؟ بگدینک با شنیدن صدای پادشاه فوراً بالای پله ها زانو زد و گفت قربان قربان اشتباه میکنید من هرگز جسارتی نخواهم کرد من از سپایان وفادار شما هستم و هیچ نیتی جز خدمت به قبله عالم نخواهم داشته و بعد یکی از گلهای سوسن رو به پادشاه هدگه کرد پادشاه از رفتار زیبا و معدبانی بگدینک به قدری خوشش اومد که همونجا اون رو به مقام بالاتری منصوب کرد چند روز بعد از این ماجرا شماری از سربازان پادشاه از سفر بریشتن و برای پادشاه از شاهزاده خانم جوانی خبر آوردن که در جزیره در میون دریا زندگی میکنه اونا اونقدر از جمال و کمال و منال شاهزاده خانم برای پادشاه گفتن و گفتن که آرزوی دیدن اون در دل پادشاه شعنه شد و فورا دستور داد بگدینک برای آوردن شاهزاده خانم به قصر خودش رو آماده کنه و تهدید کرد که اگه بدون شاهزاده به قصر برگرده بیشک کشته میشه اما آوردن شاهزاده خانم از جزیره ای در میون دریا کار ساده ای نبود و بوتینک نمیدونست چیکار باید بکنه بگدینک با نومیدی رفت سراغ اسپش تا با اون مشورت کنه اسب گفت نگفتم اون گلهای سوسن رو نچین این اولین بدشانسی توه بگدینک با ناراحتی گفت الان موقع سرزنش کردن نیست تو باید به من کمک کنی اسب گفت وس نخور من کمکت میکنم تو باید به انتهای پل بلورین بری اونجا یک کشتی میبینی سوار کشتی شو و گروهی نوازندن با خودت ببر چون شاهزاده خانم عاشق موسیقیه بعد به سمت جزیره حرکت کن و در مسیر راه هر کسی از تو کمک خواست حتما به اون کمک کن بوگدینک با دقت به حرفهای اسبش گوش داد و اونا رو به خاطر سپرد اون به انتهای پل بلورین رفت که هفتاد کیلومتر طول داشت کشتی رو دید و همراه نوازندگانش سوار کشتی شد و حرکت کردند. هنوز خیلی از راه رو پشت سر نگذاشته بودن که به ساحل رسیدن اونجا سه تا سگ دیدن که با هم در حال خورد بودن در حقیقت اونا سگ نبودند بلکه سه شاهزادهی بودن که افسون شده بودن و بر سر پادشاهی با هم زده خورد می سگها با دیدن بگدینک از اون خواستن که بینشون داوری کنه بگدینک فکری کرده گفت پیشنهاد میکنم که ابتدا فرزند ارشد بعد از اون دومین شاهزاده و بعدش هم کوچکترین فرزند حکومت کنه سک ها با هم توافق کردند که این پیشنهاد برای پایان دادن به این مشاجره بهترین راه حله بعد از بوگدینک تشکر کردن و گفتن اگر روزی به کمک ما نیاز داشتی خبرمون کن بوگدینک به راه خودش ادامه داد کمی بعد موجودی رو دید که سر و بال عقاب داشت و بدن شیر اسم این موجود افسانه‌ای گریفون بود گریفون داشت حصف ای رو هم می کرد و می خواست اون رو به داخل لونش در بیشهزار ببره. ولی درختها به قدری فشرده و نزدیک به هم بودن که امکان نداشت بتونه و چون این شکار تنومندی از میون اونها پرواز کنه. بگدنک به کمک گریفون رفت و بسیاری از درختان رو قطع کرد تا راهی به طرف لانه گریفون باز شه. گریفون ازش تشکر کرد و گفت اگه روزی به کمک نیاز داشتی حتما منو خبر کن بگدینک در ادامه راه نهنگی رو دید که روی ساحل میونش گیر کرده بود اون با مهربونی به نهنگ کمک کرد که از اون وضعیت نجات پیدا کنه نهنگ هم ازش تشکر کرد و گفت از روزی به من نیاز خبرم کن بگدینک رفت و رفت تا به جزیره ای رسید که شاهصاد خانم در اون زندگی میکرد بگدینک فورا به گروه نوازندگان گفت که خوشنواترین آهنگ خودشون رو بنوازند. شاهزاده خانم با شنیدن صدای آهنگ به طرف ساحل رفت تا ببینه چه کسی این آهنگ زیبا رو مینوازه. و وقتی بگدینک رو دید، مجذوب ظاهرش شد و اون رو به قصر دعوت کرد. بعد از صرف شام، شاهزاده جزیره رو به بگدینک نشون داد. بگدینک هم شاهزاده خانم رو به دیدن کشتیش دعوت کرد وقتی شاهزاده خانم روی عرشه اومد بگدینک به نوازندگان دستور داد بلندتر بنوازند شاهزاده خانم اونقدر از نوای موسیقی خوشش اومده بود که اصلا متوجه نشد لنگرا رو کشیدن و از جزیره دور شدند و وقتی متوجه این موضوع شد از شدت عصبانیت کلید قصرش رو به دریا انداخت کشتی بگدینک همچنان پیش رفت و رفت تا به قصر پادشاه رسیدن پادشاه با دیدن شاهزاده خانم به وجد اومد و همونجا از اون خواستگاری کرد اما شاهزاده خانم گفت تا کسی رو نفرستی که قصرم رو بیاره استواج نمیکنم. پادشاه هم فوراً به بگدینک دستور داد که بره و قصر شاهزاده خانون رو بیاره اما اون چجوری میتونست قصر شاهزاده خانم رو بیاره دینک به سراغ سکه ها رفت و از اونا خواست برن و قصر شاهزاده خانم رو بیارن سکه هم در یه چشم زدن قصر شاهزاده خانم رو آوردن و اون رو در مقابل پادشاه قرار دادن پادشاه به شاهزاده خانم گفت بفرمایید قصر شما اینجاست حالا با من ازدواج میکنین؟ شاهزاده خانم جواب داد ولی ولی من چجوری وارد قصر بشم؟ وقتی درش خفله و کلیدش رو گم کردم بادشاه این بار هم به بگدی دستور داد که بره و کلید قصر شاهزاده خانم رو بیاره اما اون چجوری می بره و کلید قصر شاهزاده خانم رو که در غعر دریا افتاده بود بیاره بله درست حد زدید اون به سراغ نهنگ رفت و از اون کمک خواست نهنگ هم همه مایه های دریا رو خبر کرد و از اونا خواست دنبال کلید بگردن و بالاخره هم کلید رو پیدا کردن و بگدینک کلید رو به پادشاه تحویل داد پادشاه این بار هم از شاهزاده خانم پرسید که آیا با اون ازدواج میکنه؟ ولی شاهزاده خانم این بار هم گفت آه، تا آب چشمه های مرگ و زندگی رو که هفت جادوگر از اون محافظت میکنن نداشته باشم؟ با تو استواج نمیکنم. اینبار این بار هم بگدینک به دستور پادشاه برای آوردن آب چشمه مرگ و زندگی به راه افتهاد و این بار رفت سراغ گریفون بگدینک دو بطری برداشت و سیم بلندی رو به هر کدوم بست و از گریفون خواست که اون رو بر پشت خودش سوار کنه و بالای چشمه ببره اونا وقتی بالای چشمه رسیدن بطری ها رو داخل چشمه انداختن، بطری دست راست رو داخل چشمه مرگ و بطری دست چپ رو داخل چشمه زندگی انداختن. بگدینک وقتی بطری ها رو بالا کشید، هفت جادوگر به سرعت از چشمه به بیرون پرواز کردن، و آتیش دهنشون رو به طرف اون نشونه گرفتن اما گریفون به سرعت حرکت کرد و قبل از اینکه هفت جادوگر بتونن بونا آسیبی برسونن از اونجا دور شدن به این ترتیب بگدینک هم آب مرگ و هم آب زندگی رو برای شاهزاده خانم آورد پادشاه این بار هم از شاهزاده خانم پرسید که حاضره با اون ازدواج کنه؟ و شاهزاده خانم جواب داد تا سر بگدینک رو از تنش جدا نکنی با توی سواش حالا به نظر شما پادشاه سر از تن وفادار جدا میکنه؟ پادشاه که فقط آرزوی ازدواج با شاهزاده خانم رو در سر داشت به وفاداری بگدینک هیچ اهمیتی نداد و فورا به جلاد دستور داد که سر از تن بگدینک جدا کنه. در عرض چند دقیقه سر از تن بگدینک جدا شد در این موقع شاهزاده خانم بطری آب زندگی رو برداشت و مقداری از اون رو روی سر بگدینک ریخته فاصله سر به بدن وحس شد و بگدینک زنده شد شاهزاد خانم با خودش گفت این پادشاه به وفادار نک وفا نکرد کجوری ممکنه به من وفادار بمونه بعد رو کرد به پادشاه و گفت اگه اجازه ندی جلات گردنتون رو بزنه ازدواجی سر نمیگیره. پادشاه که فکر میکرد شاهزاده خانم از آب زندگی روی اون میریزه و اون دوباره زنده میشه فوری به جلاد دستور داد که گردنش رو بزنه. اما وقتی گردن پادشاه رو زدن شاهزاد خانم خندید و گفت <تصفيق> بذارین همینجا بمونه و منتظر باشه. وقتی باب نک ازدفاش کردم به اندازه کافی فرصت هست که سرش رو به بدنش فست کنیم. بله. شاهزاده خانوم تصمیم گرفته بود با کسی جز ببینک ازدواج نکنه اونا به کلیسا رفتن و با هم ازدواج کردن و سالهای سال در کنار هم به خوبی و خوشی روزگار رو سپری کردن این چه که امشب براتون نقل کردم افثانی بوگدینک بود برگرفته از کتاب افثانه های مردم لهستان به گردآوری السی بایرد با ترجمه از فاطمی شاه حسینی امیدوارم که لذت برده باشین افثانه های ملل اگرچه متعلق به مردمان سرزمین های مختلفن اما هیچ افسانی خودش رو در بند زمان و مکان خاصی محصور نکرده و این از ویژگی های هاست که فرازمانی و هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح راستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صدابردار منیره قرغانی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسان ای دیگر به